کتاب قصه ها و افسانه های مردم خوزستان نویسنده یوسف عزیزی بنی ترو و سلیمه فتوحی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده این افسانه محمد معصومیان افسانه جمیل و جمیله روزی روزگاری جوانی به نام جمیل زندگی میکرد که دختر عمویی به نام جمیله داشت هزارشون این دو را از هنگام تولد برای هم نامزد کرده بود وقتی روز عروسی نزدیک شد جمیل برای یک سفر سه روزه به شهر رفت تا برای عروس جهیزیه بخرد اما جمیله در روستا موند یه روز که دختسران ده برای گردآوری هیزم به بیش هزار میرفتند، هم با آنها رفت. وی هنگامی که خار و هیزم خوش را جمع می کرد، چشمش به یک دسته آهنی افتاد که سر راهش افتاده بود جمیل دسته هاون را لای هیزوم ها جا داد وقتی دخترها آماده شده بودند که به خانه برگردند، او هیمه هیزوم بلند که تا روی سرش قرار بده اما دسته از میون هیزوم افتاد هر بار که هیزوم بلند میکرد دسته به زمین می افتاد دختر که منتظر جمیله بودند بهش گفتند جمیله هوا رو به تاریکی داره میره اگه میخوایی با ما بیای بیا وگرنه ما میریم تنها میمونی جمیله گفت شما برید نگران نباشید من نمیتونم این دست رو جا بذارم باید بیارمش حتی ایه شده تا نصف شب طول بکشه دخترها جمیله رو ترک کردن و به روستا برگشتن وقتی هوا تاریخ تر شد دست آوند در یک لحظه به یک غول تبدیل شد و جمیله رو روی دوشش انداخت و بیدرنگ اونجا رو ترک کرد. او بیابون را زیر پا گذاشت و رفت و رفت تا اینکه پس از یک ماه به قلعه ای رسید. دختر رو در قلعه زندانی کرد و گفت اینجا تحت حمایت من هستی هیچ آسیبی به تو نمیرسه اما جمیله با ناراحتی گریه سر داد و با خودش گفت وای ببین چه بلایی سر خودم آوردن از اون طرف دخترها که با آبادی برگشتند مادر جمیله ازشون پرسید که بچه‌ جمیله کو دختر من کجاست نام جواب دادن ول دختر شما تو 23000 موند ما بهش گفتیم بیاد اون گفت نه شما برید من خودم یه دسته آوام پیدا کردم نمیتونم ترکش کنم باید با خودم بیارم حتی اگه مجبور باشم تا نصف شب اینجا بمونم مادر جمیل پریاد زنان در تاریکی شب به سمت بیشه زار دوید. مرزای روستام که دیدن مادر جمیل داره تنهایی به سمت بیشه میره بهش گفتن صبر کن صبر کن ما هم راست میان. تو اصلا نمیخواد بیای تو برگرد خونه ما میریم جویلر رو برات پیدا میکنیم میاریم. یه زن نباید انگام شب آواره هزار بشه. ولی مادر جمیله پریاد میزد میگو من با شما میام. ممکنه دخترم نیش اغربی ماری چیزی خورده باشه کشته شده باشه یا جانورها ها دریده باشنش. وش چه خاکی به سرم بیرزن. بلاخره مردم هم و با مادر جمیله همراه شدن و یکی از دختران هم با خودشون بردن که جای اونو تو زار نشون نشون بدن. اونها ایمه ایزوم همون جایی پیدا کردن که از جمیله روی زمین گذاشته بود. اما اثری از خودش نبود. صداش کردن با صدای بلند جمیله جمیله ولی هرچی پریاد می زدن کسی جواب نمیداد. مجبور شدن یا آتیش بزرگی روشن کردن و تا صبح جست جوی جمله پرداختند. مادر جمیله هم بیتابی میکرد گفتش که دخت شما رو اگر برده بودن اگر گم شده بود شما چیکار می کردید منم نگران دخترم هستم. خلاصه هیچکس موفق نشد جمع رو پیدا کنه و همه نامید و خسته به خونهشون برگشتند. روز چهارم پدر و مادر جمیله به خودشون گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم جمیلی رفته برای خرید لباس عروسی اگه برگرده به چی بگیم بالاخره تصمیم گرفتن یه کلکی به جمیل بزنن یه بوزو سرشو بریدن و یه قبری هم درست کردن و بوزو دف کردن یه سنگم روی قبر گذاشتن که وقتی جمیل اومد بهش بگن که آره جمیله بود کرده مرده مام اینجا دفنش کردیم خلاصه پسرمون دختر از برگشت. برگست یه سری لباس و زیورالات و هدایایی که خریده بود و با خودش آورده بود وقتی وارد رده شد پدر جمیله به پیچوازش رفت و گفت امیدوارم که در روینده خوشبخت بشی اما باید بهت خبر بدی رو بگم که جمیله عمرشو به تو داد و فوت کرد. جمیل که اینو شنید اشکاش سرازی شد و زار زار گریه کرد. خلاصه انقدر نارو میکرد که بردن قبر جمیله رو بهش نشون دادن. خلاص جمیلم هم لباس های عروسی رو که با باسه جمیلی آورده بود زیر بغلش گرفته بود و دنبالشون اومد. جعیزی و وسایل رو روی غرب گذاشت و های های گریه کرد. از شدت ناراحتی سرش رو به سنگ قبل میکوید. تمام روز با این حالت در کنار غرب موند. تا اینکه شب رسید. دوباره روز بعد سر قبل رفت لباسای عروسی هنوز روی قبل بود. نشست رو یک از رو بازم سرشو به سنگ قبل زد. تا شش ماه کار این جوون همین بود. یه روز مردی که پیاده در بیابون سفر می کرد خودشو در برابر خسر بلندی دید که تک و تنها تو بیابون ساخته شده. هیچ خونه ای آبادی چیزی نزدیکش نبود. مرد به خودش گفت برم سایه دیوار این قصدی بکنم کنار دیواری دراز کشید و داشت استراحت میکرد که دختری رو دید و پرسید شما دیوی یا انسانی مرد گفت من آدمی زادم دختر گفت کی تو رو به اینجا آورده؟ کی تو رو راهنمایی کرده بیا اینجا؟ اینجا سرزمین قولها و دیوار اصلا دنبال چی هستی؟ بعدش گفتش که شما اصلا اگر آدم آقلی عصیب قبل از اینکه که قول تو رو ببینتت و بکشتت حتما از اینجا فرار کن و برو. جون تو برداره در رو. اما قبل از اینکه بری به من بگو مسیرت کجاست کن اون طرف میری. مرد پسید گفت چرا اینقدر دوره من و مسیرم و مقصدم کنجکاوی کنی. دختگ و خواهشی یه تقاضایی ازت دارم اگر احیانا از طرف دهمو رفتی یه پیامی برات دارم این پیام منو به نفر به نام جمیل برسو بش بگو از فراز کاخ بلندی در بیابان جمیل سلامت میرساند از ورای دیوارهای ستبر زندان جمیله صدای ای را میشنود که در قبر وی خاکش کردند تا جوان شجاع و سویوار را فرید دهند. جمیله در جایی که با بیابانی میوزند و میرویند تک و تنها و پیوسته میگرید و میگرید. مرد با خودش گفتش من باید حتما این کاری که این دختر از من خواسته را انجام بدم. را افتاد به سمت روستایی که جمیله بهش گفته بود خلاصه بخواست خدا به در خونه جمیل رسید همونجا منتظرمون یه جوانی بیرون اومد با موهای ژولیده که تا روی پیشونیشون پوشونده بود ریش بلندی هم داشت که تا سینهش میرسید مرد جوان پرسید سلام غریبه از کجا میای؟ مسافر گفت من از این سمت قرب میام به طرف شرخ میرم جوان خب بیا داخل بیا یه شامی قضایی چیزی با ما بخورد مرد دعوت قبول که از وارد خونه شد سفره بود و اعضای خانواده همیگی مشغول خوردم بودن. به غیر از اون جوان که تنها کناره در اتاق نشست مسافر پرسید جوان چرا غذا نمیخوری؟ دیگران گفتن بلش کن شما از ماجرای اون خبر نداری؟ اشتاهای خوردن نداره مصافه ساکت شد تا اینکه یکی از سازران گفت جمیل کمی آب برامون بیار یه دفعه قریبه فریاد زد مردم کلمه جمیل من رو یاد یه چیزی انداخت وقتی از بیابون رد می یه قلعه بزرگ دیدم که در پنجره اون دختری نشسته بود بقیه حرفش رو گفتن ساکت بابا جلوی جمیل از دختری صحبت نکن اما مسافر منظورشو فهمید و گفت آخه من دیدم اون دختر رو جمیل گفت قریب ادامه بده چی دیدی؟ من مسافر گفت اگر دروغ گفتن بتونه آدم نجات بده من این کار انجام نمیدم اما گفتن حقیقت باعث نجات بیشتر آدم میشه بعد کل داستان و پیام دختر رو برای اونا تعریف کرد جمیل گفت آه پس جمیله فرار کرده ولی شما به من گفتید که مرده آره هیچ وقت ماه خوشت نمیمونه بعد با شتاب کلنگ خودشو برداشت و رفت سراغ قبر و جمجای بود و از زیر خاک بیرون حالا سه جمیل گفتش که حالا که یه همچین اتفاقی برای جمیله افتاده من ازتون خواهش یه مقدار غذا و به من برید من همراه این مرد غریبه میرم تا جمیله رو پیدا کنم مرد مسافر گفت من که نمیتونم با تو بیام چون راه خیلی دوره فقط میبرمت یه راه و بهت مسیر و بهت نشون بدم. خلاصه جمیل برداشت برد و بعد از دو سه روز به یه جاده رسید گفت از این جاده اگر بری مطمئنن میرسی به همون قصر و خودش برگشت جمیل روزها و هفت ها راه رفت تا اینکه بعد از یک ماه قصر رو دید که دور مشخص بود از خوشحالی شروع به دویدن کرد تا پای دیوارهای قصر اصلا بعد جمیل با خودش گفت خدای بزرگ ها چی کار کنم این ای که نه دری داره نه پنجری دیواراش هم اینقدر ساق و لغزنه است که نمیشه ازش بالا رفت تو این فکر بود که دخترموش از پنجره نگاهی به بیرون انداخت و گفت آه جمیل عزیز جمیل سرشو بلند کرد نگاهشون به هم گره خورد و بغت درگیلی جمیل ترکید و اشک از چشمه سر و زی شد جمیل گفت بسرم اوی عزیز کی تو رو تو این راه آورد کی به راه یه اینجا رو داد؟ جمیل جواب داد عشق تو منو رو هر کرد و به اینجا ها بود. جمیل با صدای بلند و سوزناکی گفت اگه منو دوستداری قبولا اینکه قول بیاد و تو رو بخوره و استخوناتو خورد کنه از اینجا برو. جمیل گفت به خدا به جان عزیزت قسم حتی اگر بمیرم تو رو نمیکنم. نمی کنم. من اومدم تو رو نجات بدم. جمیله گفت بسرمو من فقط میتونم یه تنابی بندازم برات که بیای بالا. و مراقب خودت باش جمیله رفی تناو بورد و از اون بولا انداخت پایین و جمیل با سختی از دیوار بالا رفت خودشو خودش رو به جمیله رسوند. اونها یکدیگر رو در آغوش گرفتن و هایشان در کنار هم آرام گرفت اما چقدر اشک نریختند. جمیله گفت: بسرموی عزیز حالا من کجا تو رو قایمت کنم کجا پنونت کنم که دیو تو رو نبینه اگر توی پاتیل غذا پنونت کنم ممکنه دیو تو رو نبینه بیا برو توی این پاتیل غذا خلاصه جمیله به سختی پاتیل رو روی جمیل گذاشت و در همون لحظه غول وارد شد یه لحظهش گوشت آدمی زاد بود که برای خودش آوردود دست دیگه اش گوشت گوشتون که برای جمیله آورده بود. بعد کم بو کشید اطراف و گفت من بوی آدم به دماغم میرسه. چیه این بو؟ جمیله گفت اوه پذر اینم طوفان و بادهای کبیری بوده. این لابد یه یک کسی میخواسته بیاد به این قره برسه بوشو تو تا اینجا باد آورده. بعد شروع کرد به گریه کردن اول گفت نه نکن دخترم من یه سمق خوشبویی دارم اونو می تا بتونیم نفس بکشیم و درست کشی تا سراحتی بکنه اما همین که دخترک شروع به پختن نون کرد گوشت انسان توی قابلم جنبید و به صدا در اومد. گفت یک انسان زیر دیگه است و گوشت بوصفن به دنبال آن گفت خدا پسر را عقیم کند. قول در میان خواب و بیداری پرسید جمیله اینا چی میگن؟ جمیله گفت اونا میگن ما نمک میخوایم نمک بیشتری باید اضافه کنم تو غذا بعد از مدتی گوشت انسان بار دیگر از جاش شهید و گفت یک انسان زیر دیگه است بعد گوشت گوشت از خدا پسر را عقیم کند. قول پرسید این چه صدایی بود جمیله؟ جمیله گفت اونا میگن ما فلفل فل میخوایم، فلفل فل بیشتری اضافه کن، من این کارو کردم. گوشت انسان از جا جهید و صدا کرد، یک انسان زیر دیگه است. و گوشت گوشتونگو خدا پسرمویش رو عقیم کند. بسی قول پرسید اونا چه میگن جمیله گفت اونا به من میگن ما پخته شدیم، آماده ایم، ما رو رو آتیش بردارد. قول گفت پس بزار شاممونو بخوریم. همین که شامش رو خورد و دستهایش رو شست گفت جمیله رخص خوابم رو پند کن. میخوام بخوابم. جمیله دوشک رو پند کرد و بالش آماده آمده کرد و برای خواب کردن قول و جلب توجهش بال سرش نشست و حرف زدن و شانه کردن مواش. پزر شما خیات نیستی اما یک سوزن داری. دلیلش رو برام میگی. هول گفتی یه سوزن معمولی نیست وقتی اون روی زمین میندازم به یه خارستان تبدیل میشه که گذاشتن ازش ممکن نیست دختر که پدرجان شما کفاش نیستی اما یه درفش داری دلیلشو برام میگی هول گفت این با درخش کفاشی فرق میکنه عزیزم وقتی اونا روی زمین میندازم تبدیل به یه کوه آهن میشه که گذاشتن ازش ممکن نیست باز دختر گفت در شما کشاورت نیستی اما یه بیل داری علت رو به هم میگی قول گفت این یه بیل معمولی نیست وقتی اون روی زمین میندازم در پهناوری ایجاد میشه که هیچ انسانی نمیتونه ازش بگذره اما دخترم همه باشه اینا رازیه که باید بین من و تو باشه هیچکس نباید از اون سه از بیاره بول همونطور که صحبت میکرد، خوابش بود از چشماش نور زردی می تمام اتاق روشن کرده بود جمیل از زیر پاچید صدا جمیل بیا بذار فرار کنیم با هنوز زود بذارم و درستی که غول خوابه اما هنوز می بینه اونا ساکن نشستن و انتظار کشنن تو چشمان و قرمز شد اتاق با نور قرمزی پر شد زمین دو گفت حالا باید حرکت کنی و سوزن و در و بیل سرامیز را در لباس پسرموش پیچید و تناب و برداشت با آن از پنجره پایین نفتن با شتاب به سمت روستاشون حرکت کردن در این مدت او توی رخت خوابش تو خورناس و خورناسو میکشید سگ شکاری داشت که سعی میکرد اونو بیدار کنه بهش میگفه ای خوابالود به توش دار میدم جمیله رفت و به تو آسیب خواهد رساند قول فقط برای چند لحظه بیدار شد که سج رو بزنه دوباره خوابش بود و تو صبح بیدار نشد. صبح که از خواب بیدار شد صدا زد آی جمیله آی جمیله اما از جمیله نه صدایی میومد نه نشونی مونده بود. قول با عجله اصله و سگ خود رو برداشت و دوان دوان به تعقیب دختر پردا. جمیله در حال پراستنش و برگرده رو زد. جمیل جمیل قول داره به طرف ما میاد پسرمون. جمیل گفت کجاست من که اون رو نمیبینم. جمیل گفت اون انقدر دوره که اینی سوزن به نظر میاد. آن دو شروع به دویدن کردن اما قول و سگش سریتر تر وقتی به جمیل و جمیله نزدیک شدن جمیل سوزن سهرامیز را روی زمین انداخت که بر اثر آن یک خارستان بزرگ پدید آمد. راه رو بر قول و سگش بست اما اونا شروع کردن به چیدن خارها تا اینکه تونستن یه راه باریکی از وسط اونا باز کنند و دنبال جمیل و جمیله بدوند. جمیله دوباره به پشت سرش نگاه کرد، فریاد زد به سرمون، داره به سمت ما میاد. جمیل گفت، من که نیبینمش، کجاست به من نشونش بده؟ جمیله گفت، داره با سگش میاد به اندازه یه درفش فاصله داره با ما. اندکی که سریتر دویدند، اما سرعت غور و سگش بیشتر بود و طولی نکشید که به جمیل و جمیله رسیدند. جمیل درفت رو روی زمین اندا یک کوه آهنی از دل خاک سر در آورد و جاد در آبست. متوقف شد، اما اندکی بعد اون و سگش به کندن آهم پرداختند، راهی از بین اون باز کردن و به راه خودشون ادامه دادند. جمیله نظری به پشت سرش انداخ، فریاد زد آی پسن همون، قول و سگش دارن نزدیک میشن. جمیله بیر سهرآمیز را رو روی زمین انداخت در این لحظه دریای بزرگی بین اونها بهوجودمد قول و سگ شروع به خوردن آب کردند تو خشک راهی رو از میون دریا ایجاد کنند اما شکم سگ پر از آب شور شد و ترکی سگ قول مرد ولی غول در همون جایی که بود نشست و با نفرت جمیله گفت امیدوارم خدا سر تو شبیه سر اولاق موات تو عین کنف بکنه بر همون لحظه جمیله تغییر شکل پیدا کرد صورتش شد مثل صورت ماشه اولاق دراز موهاش هم مثل گونی زبر رو به هم باخته شد وقتی جمیل به اطفق نگاه کرد اون رو دید گفت ای من این همین راه هم اومدم به خاطر یه عروس نیه ماده اولاق و با سمت دهشون دوید و جمیله رو تنها بذاشت اما بسطه را واسطات با خودش که هست چه جمیله منه چطور اون را میدن میانه تنها بذارم ممکنه اون کسی که شفتش تغییر دوباره درستش کنه جمیل به شتاب برگشت بلوی دخترموشو گفت جمیله بیا با هم بریم ولی مردم چی میگن؟ اونا باور نمیکنن که تو جمیله هستی من چیکار کار کنم؟ چجوری تو رو نشونه مردم بدم؟ جمیله با گریه گفت وقتی هوا تاریک شد من به برخونمون چیزی هم به کسی نگو اونا منتظر موندن تا آفتاب غروب کرد بعد با هم رفتن خونه مادر جمیله رو زدن و گفتن باز کنید در باز کنید من جمیلم دخترمون رو با خودم آوردم. مادر جمیله با خوشحالی در رو کرد پرسید دخترم کجاست؟ راستش رو بگو کش من ببینم. اما وقتی جمیل در رو دید گفت پنافر خدا. دخترم اولاخ شده؟ یه زاری مسخرن میکنی؟ جمیل گفت صداتو بیار پایین. کسی نباید بشنوه جمیله گفت مادر من خودمم من میتونم به شما ثابت کنم که دخترتون هستم اون وقت ران پاشو شد داد گفت اینجا همون جاییه که یک بار سگ گازم گرفت یادت میاد و سینهشو داد گفت اینجا همون جاییه که گرسوزمن منو سوزوند اون وقت مادر جمیله دخترشو شناخت بغلش کرد و گریه کرد و جمیله همه این ماجره رو برایش تعریف کرد و گفت مادر حالا خواهش میکنم من یک یه گوشه خونه پنهان کن و هرکی از من سآلی کرد بگید منو پیدا نکردی منم سبت میکنم شاید لطف خدا شامل حالم شد و دوباره به شکل اولم برگشتم. از اون به بعد جمیله مثل زندانی در گوشه خونه مادر زندگی که فقط جوراحت شوا بیرون بره و وقتی مردم سراغ شاید جمیل میگرفتن جمیل هم میگفت من جمیله رو پیدا نکردم. بعد مردم میگفتن خوصه نخور. ما دختر دیگه ای بیتر از جمیله برات پیدا میکنیم. بعد جمیل در پاس روشی گفت نه. من دیگه ازدواج نمیکنم. و تا چه عشقم به جمیله همچنان شوله میکشه. و تا زنده هم دیگه غیر از جمیله به کسی دل نمیبندن. بعض اونا پرسیدن جهیزهی که خریدی چی میشه؟ گفت به بمونه. به چه درد من میخوره دوستاش گفتن جمی راستی که واقعا آزم دیوانه ای هستی جمیلن بهشون گفت من دیگه بعد از این نمیخوام با هیچ از شما معاشرت کنم و رفت به خونه اموش که در کنار اونا زندگی کنه سه ماه خوزه است روزی در بیابان یک فروشنده دورگرد از کنار قلعه بلند قول گذشت قول اونو رو گرفت و گفت اگه معموریتی برام انجام بدی قول میدم به تو آزاری نرسونم. دور گرد که نزی بوده ترس در درک بشه گفت من آمادم هر دستوری به انجام میدم قول گفت این رو میگیری میری میرسی به ده یه جوانی اونجاست به نام جمیل و یه دختری به نام جمیله برو به جمیله بگو حدیه ای از پدرت یعنی قول برات آوردم. این آینه رو بگیر و خودتو در اون ببین و یه شونه هم که در کنارش هست با اون شونه هم سرتو شونه کن. بعد آینه و شونه رو به دست دورگرد داد و دورگرد رافت داد. راف داد رفت رسید به روستای جمیل و جمیله و با اوتشنه و, تشنه و گرما و پیاده روی در و اون در زد جمیل در خونه بیرون اومد و دورگرز رو که دید بهش گفت واقعا چیه چرا نوراحتی چرا انقدر خستی دورگرز گفت من همی هران سفر یک ماهی رو از جاده بیابونی پشت سر گذاشتم. جمیل گفت صدره هست قلعه چیزی هم دیدی؟ دورگرز گفت بله آقای من بعد پیام قول رو براش بازگور کرد و هدیه جمیله را بهش داد. جمیده همین که با این قول نگاه کرد صورتش به حالت اولیه در اومد. بعد شونرم که به موهای زبرش کشید موهاش هم مثالت قبلی شدم. مادر جمیده هل هل سرداد و مردم روستا دور خونه اونا جمع شدن و همگی سوال میکردن چی شده چی نشده خلاصه؟ همه خوشحال شدند و تدارک عروسی جمیل و جمیله را دیدند بالاخره جمیله زن جمیل شد و بعد از چند سال با هم دیگه چند تا دکتر پسر صاحب شدند و با خوبی و خوشی و خورمی با هم زندگی کردند کانال تلگرامی هزار داستان های افسانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me slash مهران دوستی t.me slash E S T I نشانی وبلاگ ما M